بسم الله و الحمد لله رب بخوری سیدنا الله و آله طیبین و طاهرین المحسومین و لفت دائمه و اللهم در مبخص انصافش اینه که موضوع واحد مشخصی نداره و مجموعه یه روایاتی که در باب سه اجمالاً ثابت ثابت شدن و اصلا تا حدی اونم مشکل بسندیداش ملعون از صاحر و ملعون و در بعضی از محصوص هم تجرد صاحر و جزوه صحب قرار داده شد یه مشکلی که ما در اینجا داریم مثلا روایات صحب ما متحدده یکی دوتا نیست تو بعضیاش تهر آمده بعضیاش نه آمده اینوز نگاه می کنن روایت احضی سنت در تبایر مثل روایت ما اونا متحدد دارن نقطه و متحدد کم تر بیشتر دارن بیستر ندارست نقطه کم تر دارن توی روایت عبی برگر شد خصوص تهر آمده حده یعنی روایتش رو من نگاه کردن توی تبایر چیزشون عزیبی بود از مثل نشد به کلمات خود علمای احضی سنت مناسی آی که اونها در جمع چه کردند. منو احتمال رو اقتمال میدن چون روایت ابو غریبه در کتاب بخاری آمده و صحف در اونجور جزوه کباهره فکر می‌کنم اکثرشون قبول داشته باشن اونجور. و لا روایت دیگری هست از غیر از ابو غریبه صحابه چند مثن هست توی اونا ها هیچ کتب میخونن صحف نگه این از اجایی بکنم فقط تو همه روایت هم من تحجیب خامل نگردم بود ک در بحث خوارج که کل یه جاورده آورده فقط توی روایت سهر جو دونهاست توی بقیه روایا که چون سهر جو تو خود روایت ما همین به لحاظه این لحاظه این لحاظه هم همینطوره به لحاظ این روایت علاوه بر خود مصادر ما هم همین و اما به لحاظ روایت خود ما اهل بیت که روایت عبدالحسین هاشمی است که توی سهر آمده بقیه روایات خوارج که سند معتبر هم داره توی سهر نمی‌آد پس ما یک مشکل اینجوری به لحاظ علمی داره توی بعضی از رواایا ذکر شده توی بعضی از روایات ذکر نشده البته خب که جمعی هست خب ایده قائله که قبایل اصلا محدود به از نیست مثل موارد یک تمام زروب و قبایل میاد چون این مدنا قابل قبول نیست حالا دیگه توی بحثش اینجاست انصافا در بعضی از مواردش آمده اما در کل موارد نیست از به لحاظ واقع خارجی هم اونی که ما ذره ندارن میبینیم اون مجموعهایی که به اسم صحب گفته شده، به عنوان این متقابله، تیغ نرخ نیست و اجمالاً یک میلداری است، حتی کوفه بوده و اونی که الان به حیض مجموعه میشه، یعنی اجراییتی از جلسه تقریب آن اون جاهایی که مستلزم کوفه، اون جایی که مستلزم ایزه دیگرانه، اون جاهایی که مستلزم تصرف در انبال، انفوس دیگر، خصوصی ها بلکه میشه گفت شاید بتوان گفت شاید بعضی از اموری که فقط ظاهر پیش ما الان سر حساب نمیشه و حرام هم نیست به انسان جیوه بزنه به تناقضی حرکت میکنه ولی مارندش مار مار خب بر هم شکل ما در از آن شکل ما ذره راه میوسته این اصلا دلیل بر حرمت ان کاری که ندیدین کاری که حرام نیست چه دیگه داره میگه نه چون نقص بر حساب اضافه کنه احتمال نمیدنم چون در سابقه به خاطر تماس جهل به مردم پراوان بود این سلخ که جیوه رو این در اکتیار یک بود که اونا ساهر بگفتن احتمال داره افراد که می روزن. این کاری فرمان علمیه جیوه که خب بخص علمیست بخص صحف درش مقرمیست احتمالی من می که شاید تعلوم همین امروی که از فی نفسه جایده این محتمی بر یک مقدماتی بوده اینا هرگیا طبیعیه که استاد دورانی، دوران 6 سالی، 8 سالی، 8 سالی 8 سالی هر مطلب علمی خیلی بسنتی، این مطلب علمی خود این چیزی نیست که خیلی علمی باشه. یه مطلب علمی بسيط احتمال داره که یه مقدماتی داشته که با شروع اون مقدمات حتی این مطلب علمی رو میاد می‌گیرفتن. این صاف از اگر بخواد قالب احترام بشیم، باید مجموعه اینجور رو در نظر بگیریم. مجموعه یه. یعنی گاهی بوقات ممکن در یک جامعه این یک عمل عمل علمی است لفت به خاطر یاد دازمه بود چیش ماه هشت ماه بروی احماد محرمه روش انجام میده که مثلا یاد بگیرید مکلم رو این مرتکب احماد محرمه و هر حال اون چه که ما الان در میاریم میاری هر اولا بزنیم که سه اقسام داره ثانیم بعضی از موارد غرمتش احتمالا به خاطر حتی مقدمات باشه سالسن بعید نیست که ما دو تا عنوان رو قرار بدیم، نه یک که عنوان سه که عنوان, عنوان ساهر یعنی بعید نیست که خود این کار به این معنا بوده که افرادی متصدی بودن کارشون این بوده ولو این کار ممکنه فیلن. مثلا کارش پس اون تصدیر جن و از راه تصدیر جن پیدا کردن دوست بیدیم دقیق بکنه خولا می‌گم اینجا این ساحر من همیشه عرض کردم در به اصطلاح اطلاق الفاظ حتی اطلاقات اشتباهی با اطلاقات فعلی رو طرح می‌ذارم چه برسه در حدی که اطلاق مصدری خاصه که مصدر یک چیزه ساحر یک چیزه با سهره که به اطلاق به اصطلاح حدثی یعنی از راهی فعل بودن در نظر گرفته اسناد حدثی درش هست این چیز دیگه نگیر اینو من بردیان دیم در تفسیر داره که اسناد حدثی غیر اسناد اصناد اشتغال درستی؟ مقلب درسته؟ یا فعلی؟ مثلا ممکن است بگیم این آها ماشین رو راه بود ماشین رو او بود همون میبین آها هست موشون راهورد یک چیزه راننده بودن عنوان دیگه اطلاق هدستی غیر از اطلاق اشتغاقی است اصناد اشتغاقی است این اناگی ممکن است بگیم مثلا کسی جن می در اختیار داشته باشه حالا فرص کنی جهت که هم گفته شده باشه اشون از راه تصدیر اون جن مثلا بفرمتن چیه بگیم خود این عمل شاید مثلا برمه حالا فرص کنیم قرمت نداشته اشتفی نسته اما کسی متصدی این کار بشه خود دفت بکنیم مثلا زندگیش این باشه متصدی این کار بشه که مثلا از راه جن دوز رو پیدا بکنه دفت شاید به این دو تا عنوان فرق بگذاریم باز متصدی رو هم فرق بگذاریم یه دفعه کسی متصدی جن میشه علمی هم هست فرق یا من جن دارم این جن من این کارات بکنم این کار مثلا یه نیرویی در طبیعت خدا قرار دازه به نام جن من توانستم این نیروی در تصفیل بگیرم و این کارها رو انجام بذارم ولی متصفیل بشید شاید این حرام نباشه مثل کاری که از سلیمان میکرد خب جن در حضرت سلیمان ها. یعنی دیگ درست میکردن جفان چیه راستیات ها. کرد و حضور راستیات دیگ های بزرگی که نمیدارن چی 600 200 500 شده یا 5000 ارزش خوردن 7000 ارزش سی آدم توش نمیخواست خرج دریا. خب این در حقیقت این استفاده از یه قدرت غیر طبیعی که این قدرت واقعا ماورای طبیعت ماست خداوند قرار داده از این قدرتی که استفاده میکنه برای کارهای معین و چیز مخفیان نیست شاید این کار برسش ایشون که ها اگر اما اگر آمد خاصونه از راهچه چون شارع مقدس راه طبیعی رو برای باب قضاوت قرار داده خوب میکنه یکی شده بگه قاضی هم من من جن احضار میکنم یه حق با این آقاست این کار درسته بخاطر من خلاصو فرمودستون رو دلایل عینی دلایل علمی داره چرا این مردم اصل جهلشون چه حساب میکنه منطقه الان تو بحث سحریف اون یا خود خداوندی منطقه همه صالح نامیده و ظاهرا اطلاع صالح برای این ها تو عمل جون میده یعنی <تصفيق> همین کار علمی که از از آلی میفهم که جیب ماری جنب نمی و تو آب هرکتی هست یه یا نظر قرآن سه محصول میشه خب من قبول کردیم بریم اطلاع قرآنی اطلاع عدبیست اطلاع ادبی لازم نیست که حتما صحت حت و صغمش به نظ در اصلاح ادبی همون که در مردم اون زمان صرف می دوستن به همین مثلا خود از سموتها داره ماجع سر اینلاح سایوکتلو نداری بهمید بسنه ماجع به سر یعنی مجیدون بحسر. مجیدون بحسر یا ماجع برسته این نگاه کن رو هم ان ماجع به اینلاح سایوکتلو و ش... شاید ناشر ببین ماشي اونی که شما جاهبه این هسته شما با عنوان اونها رو حساب میکنید همین که شما به اونها حساب می‌کنید خداون از بین چون واقعیت نذاره یعنی واقعیت به این معناست این تناب این مار چی نداره؟ این چینه در این که ما خام پس علاوه این بعید نیست من حیص المجموع بخوای نتیجه گیری بکنید، پس کنید کسی کارش همین باشه از جن بخواد بگه حق با این راه باطل حالا جزء کباید شد نباشه حالا این راه باطل یعنی ما بیاییم بین سه و ساهر عنوان ساهر که مثلا گفت اجرت و ساهر سخت و بین عنوان سه با عنوان ساهر فر بگذاریم ساهر کسی که متصدی بشه از این راه های غیرتبیی بریکاری و این را غیر طبیعی هم ذکر کردم جوری نباشه که اعلان رسمی بگه بله خداوند متعال موجوداتی به نام جن خلق کرده موجوداتی به نام شردیی کرده موجودات بسیار عالی به نام ملک خلق کرده و برای بشر راهی قرار که میتونه با این ارتباط این کار انجام بده مثل سلیمان؟, سلیمان از سلیمان یه شریعتی هم تاثیر از داشت. علتش گفته شده صحبتش کرده و تلا و معاشت با شریعتی ناموس که سلیمان این اشکال نداره اما همین رو اگر بخواد کسی منشع قرار بده برای این که رو انجام بده و اصناد بده بگیم این کارها درست نیست هستانا ولی انصاف قصه این هست که از مجموع عدلی سه یک در بیاریم از کلان در بعضی از کتب به اطراف هم و از علمای ما هم از قدیمیان دارن مرحوم شیط تونسی هم باید کسی حقیقت از آروه خوبی هم می کن مؤسده این سر حقیقت واقعیت نداریم این ما در بحث کشم از کردیم اینا خیال میتونم واقعیت یعنی علت خواجی روز این آهن بزنی بیر چیزی نه امواجی خدا قرار دازه چیزهای عجیبی هست در طبیعت که ما کلن از اونها خبر نداریم و این فعلانی فعال ها حقیقی اینطور این نیست که این امر خیالی و بهمی باشه مثل شواری که تلویزیون می‌بینه، اگر هر چیزی صراحتا واقعیت داره، که به خاطر خاصیتی که در امواج که در فلزات هست، فلز رو با یک خاصیت معینی و برخورد به چیز دیگر با خاصیت و شکلی معینی، کاری می‌کنه که اون صحنه‌ای که با شما که سرها را دارید که رو به فلزات جلوشون منعکس بشه. این امور طبیعی و مَغْهُودِ قانون الیّت, قومن الیت نیز. نیز این که این که از قانونِ الیّت خارج نیست. امری نیست که خیالی باشه. کما اینکه اینکه که ادعی از علمای متأخر ما اصلی شهید اینها در باب سه قید ادراه رو گرفتن که سحر مضر باشه انسان این دلیل برای啥 داریم مضر بودنش مهم نیست کما اینکه مشهور این مسئله رو عرض کردیم از اصل تابعین شروع شده که سحر رو با سحر میشه ابطال کرد یعنی انسان تعلم سحر بکنه برای ابطال سحر اشکال نداره این بحث در روایات ما داره اون شخصی که میگه توبه کردم حالا حل دلانا کرده خاص زمان تابعین مطرح شده و آیا این درسته انسان با سه سه و از بین ببره این هم اجمالش اینه که از بین بردن سه با از و دعا و اینها خب تویه بحث نیست خاطر صحیحه. از بین بردن سه با سه به این معنا که سه رو ابتاد بکنه اون هم ظاهرم مانعی نبیره چون از یکی از رایی که سه رو میبره اشیاء ماسته یا قفل رو ایچی دروش میخونن به یک تکیب من که این قوف صدمدان بسته است یه تاثیر خاصی داره اینو میگن چون قوف یک آهن که چهار تا کلمهش بخونیم این چه تأثیری می‌تونه داشته باشه که واقعیت نداره نه اینا واقعیت داره واقعیت‌ها رو ما اضافه به واقعیت نداریم. چه نوع ارتباط واقعی بین این دود بین این دعا و بین این قوف با این هیئت معین هست یه رابطه واقعی هست چیزی که بعضی افراد چش می‌زنن دیگه در بحث چش متعرض شدیم که این امور واقعی هستند لیکن داره واقعیت خیلی اوسر از اون ذهنیت که ما داریم از اون علم نیست که ما داریم این رو در نظر دیم برهای که که ماکان پس بنابراین اگر کاری میکنه که سهر رو ابتال میکنه چون خودش سهر برده سهر او رو ابطال میکنه اونم اشکال نداره اما اگر بنابراین شست ابتال سهر او رو با یک اعمالی که در خودش بی نفس حرامه با یک دعاهای از و راه از بین بودنش به اعمال سهر محرم بخواد انجام بده انصافن چه این دریب نداری انصافن اون روایت هلولا تقرید رو که عبودم او صدر اوشعی نداره به اطلاقی هم نداره از که در همون زمان سدور روایت قبل صدور روایت این بحث مفرح بوده ادهی گفتن حل و رو به دعا رو کنی ادهی گفتن حل و رو به سه چون امام فرمده هل بلا تحقیق نمیدونیم دقت میکنیم ما چون کلام رو در محیط خارجیش معنا میکنیم ما نمیدونیم در اون محیط این هل چی ازش فهمیده میشه؟ با دعا یا با سه و سندشم ضعیفه به این روایت نداریم این روایت ها نمیدونیم تحبط قرار بدیم پس محتضای قاعده این سه قسمیست که من از کردن یک با دعا افتاد سهر میکنه. همین اصلا یکی از عدیه در نصبای که اپنی و دیگر روایت همین مرسله برای ابتاد صحر هم آیه هست دیگه ماجر به حسر نلاه سه افتاد که بینیدیسه با خودش در افتاد صحر با عدیه ابتاد صحر میکنه یه دفعه فرض کنین صحر رو باطل میکنه به خاطر آشنایی با یهو چنان همون راهش خره همون کارهای حرام رو انجام بده برای اینکه یک شهر حرام رو واسل بکنه این دلیلی برشه این یکی دیگه این یکی ثومی کل غلطه شامل این سومی نمیشه که ما همون اون راههای حرام رو انجام بدیم همون راه حرام رو در اینکه که جلو این راه حرام گرفته بشه این دلیلی برشه در درس ما و اخلاقی که شامل این بشه نداره این خلاصه ای کلام به شعبزم در فرق شیم محوم شیخ تحدث شدن خب ادعای اجماع کردن ادعای چیز کنید که شعبزم تا به بسان نوع از اولا راجب این که شعبز نوع از راسته انصافا به دقیقه ما عرفه عرف عرفه آم از کردن این را تسامن دارم یا شعبده یا ببور ایران یا تردستی این از که اصلا امر قیل واقعی نیست در نشان دادن اینطور طور رو بینه اصلا یک درهم مثلا یک پلی دستش میذاره یک تکان این نیست. بعد نینیست یک خاصی یک سیم بارید یک سیم یک کمرنگ میذاره یا نقلی که دیده میشه میگیدی تو هستینه این اگه امر واقعی نیست این هیچ قیل واقعی تویش نداره. مثلا چون با سرعت درس انجام میده با یک مثلا مخدماتی همراه میکنه طرف زهن طرف رو مشوش، مشوشتی میکنه چون خود این تردستی نکاث مختلف داره خودش تحسینبندی داره کتابه یا ناشتن در تردستی من این خود برس بشن این طلب اون نکاث معین این رو به اصطلاح به جوری به شکل طرف نیست که خیال میکنه این نیست کلا سرش رو رو بعد بر میذاره این واقعا کفتر هست این کلاه فکر واقعی با یک نقش مخفی و بعد آشکارش کنه حالا اون فیلمو نمی‌خونید از طردسی با خاطر کتاب ها کتاب‌ها نوشتند چند تا کتاب نوشتند در حساب طردسی و, و راههایی که در بعضیش احتیاجی به یک اتوای معلّم داره و ارزشش نداره در حافظه صحبت هست. ملاحظه این طردسی قطعاً امر واقعی است یعنی هیچ جایی هی نیست این فقط با یک نشانه خاصی توی کلاه هست یک چیز داخلی میگه یه کلمه رو میگه قانون مثلا کاری داره مثلا مثلا که کلا فر. منم مثلا مخالفم. انحاء مختلفی از ترادسی وجود داره که انجام میدن. این که قطعاً امر واقعی و این که این هم جزء سه حساب شده اینم به نظر ما بحثیه. البته مجاز اصطلاح مجازیه که امر واقعی نیست نه جای شوبیده نداره. لکن این که سه حساب شده امر واقعی درسته برای خود ما مراجعه به عرف می‌کنیم. یا این کار آدم صحیحه؟ و اضافه بر این داستان رگیاتون باشه از محمدای نهز از پسر عمر خوندی یک نفری به انگشتاش نخ میگه بعد این نخواب قایم میشون این خوب تردسته دیگه همین کاری که از تسر عبدالله نه عبدالله اون میگی دیگه, دیگه شمید اسمی توی از پسر عمر خوندی تردستی میگه که پسر عمر گفت که اگر من قضایت داشتم میکشتمش در سراب توی دارو که سهر این سهر این سهر نیست در روایات ما هم در کتاب احتجاج یه داره که هم در احتجاج تو نداره امام و از سهر و احسان منها خبطت و یدن و مخاری. این خبطت یدن میتونی پس عنوان تردستی یک وجدانا ما میبیدیم گفته شده بسید میگن مردم به سر میگن صاحب دو در اون روایاتی که از کسر و عمر نرشده که کار تردستی بوده تحبیر به بوده سه در احتجاج کبرسی هم دارید ما این رو برای اثبات همون نقطه قرفی و قطعا این جزء صحب نید بله ممکن است کسی این ها رو یاد بگیره برای فرص نشت جه در جامعه برای نشت افکار فاسد در جامعه ادعای پیهمبری کرده این کیه موقع نبوده که ماه نخشب بسا با جیوا اینها ای چیزی درست کردن به شکل ماه میشدن شاه یه وردی میخوند مثل ماه از شاه میاد بالا و بعدم غروب میکرد. نوشته درطاری مدعیه که اسم چندیه که که ماه نقشب به اصطلاح از شاه ماه درو در ادعای پیغمبرین میکرد. خب اینا ترادستی اینا رو واقعا هم جیون یه چیز آینه میدوده به شکله. که سر ترادستی بوده. اینها اگر که پینقسه با عنوان یک نکتی بخواد نشون بدن که شبه ناده که جایزه و اما اگر بخواد عناویی درش مترتب بشه انصافا که اون حرمت اون عناویی درش ترایان میکنه و به همین عنوان مثلا مدعی پیغمبری بشه خب کاریست که مثلا حرامه یعنی حرام به این محنه با عنوان اثبات معجزه پیغمبری خودش نه اینکه خودش می حرام بشه و این شبه هست البته اون مورد شبهش در تردستی که ایدم شیخم متعرض بشه یعنی کسی زندگیش از رای تردستی قرار بودش شاید انسان شبه بکنیم مثل فرقوین سیاه و صاحب فرقوین شعبزه و مشعبز. مشعبه این احتمال داره که یک شبههی باشه مثلا اگر این که بگی از ایبتو که من مثلا کارهایی یاد گرفتم و الا شبهه هست که شاید در مثلا شریعت اصول شریعت انسان است... نفسی نداری استدلال میکنیم که چهاره مقدس جور اسباب رو برای محیشت زندگی قرار ندازه نگر اینکه خودش بگه مثل کارهای علمی مثلا تلویزیون سحنه های علمی نشون بگه از این جهت باشه و الا ممکنه اینجا ممکنه شرقه پیدا باشه و به حساب داره اون هم نکته خاصی داره بعد از این مسئله شعبازهشون در حرف خیل مرحومشه متصدی قش شدن بحث قش بحث قش خب. ادعای اجماع و اینها بر حرمت و ادعای روایات هم شده و این ساخن هم خب روایات نسبتا نسبتا زیادی داریم ما اول طبق خودمون خود اول وارد روایاتش میشیم بعد از بحث روایات وارد کلمات و به اصطلاح مسائلی که در اینجا در تحلیل موضوع و محمول و آیا اینکه قش قشن حقیقتی داره نداره و خودش از نرسه حریقیت داره برای اون که حاک متعرض میشه انشاءالله تعالی در کتاب وسائل بحث قشت رو در عبام مو... به اصلاح جل دوازه چاپ قدیم اورده در عبام مایو همین کار رو هم در جامال احادیث کردن در جامال احادیث این کتابی که الان این چاپی که پیش جلد 22 جامال احادیث در باب 45 ابواب مایوصر ایشون قش آوردن باب تعیین قش روایت قش رو دادن جا آوردن حالا من از این کتاب میکنم چون اوثر روایتی که ما در باب قش کردیم به طور کلی که در این باب آمده ما فعلا اینجوری تقسیمش کنیم یه روایتی که از راهنماه روایتی که منصوب به رسول الله هن. ما فعلا روایت‌های مورد رو بشیم میشیم شاء فردا که منسوب رسول هن. اما روایت علم علیه رو السلام حدیث اول این باب، این بابی که در اینجا آمده، الان تو ذهنم نیست ایران که کجا یه به بنظرم، اما من تو ذهنم اینطوره. در کتاب کافی روايت در زل اباد آداب آدابت، باب آدابت گرایی. تو اون باب باشه بابی در وینمال اونجا هم. اما این حدیثی است که در کتاب کافی آمده. علی بن ابراهیم متهبی ابن محمد بن یحیی ان احمد ابن محمد دو تصند یکی علی بن درین یکی محمد ابن یحیی عطا احمد اشعری محمد مورد اشعری جميعا عن ابن ابي این اکثر کرارا اشاره به دو نسخه از کتاب ابن خیلی مکرر است که نوادر ابن نووی عمر شش جلد بوده و خیلی مشغول بوده و در کم بوده نمی‌دونید، در زمان کلینی. پس فردوب مستقیم از نواده نری عمر نری میکنه. احتمالا همون کتاب باشه. پس ایشون به دو طریق از این کتاب زرد نه میکنه و هر بهش هم معتبره. اکثر نسخه‌ای نسخه نوشتمه. نسخه رو نوشتم از کردم. ایشون از کوفه به قوم آمدی. ایشون کتاب رو به قوم آورد. ای که نسخه احمد اشاریس، احمد اشاریه از قم به ایران رفت نسخه را خوبه هرون هر و سه محل اعتمادن هن هشام ابن سالم و عبدالله علیه السلام قال لیس مننا من غشنم این جز احادیث معروف رسول الله هست. لیس مننا من غشنم و من غشنم و, و خیلی هم اشاره مزمونش از کردن خیلی هم مزمون لطیفیه یعنی اصولا پیغمدار میفرموید نقطهش مننا یه جامعه اسلامی ممکنه شخص عنوان اسلام رو خودش بگیره اما این غیر از حالات فردی اسلامی باید در جامعه اسلامی هم خودش رو حساب بکنه کسی که دنبال غشت داره خودش رو از جامعه اسلامی دور خیلی عزیزی تبدیلش رو چون جامعه اسلامی یعنی مردم تعامل با ظاهر میکنن. کنن مثلا ظاهرش مثلا خورمای درجیه این زیرش خورمای درجی دو بودشت سه بودشت اینکه شخص میاد ظاهر رو یک چیز قرار میده باتن رو یک چیز واقع شهرت میکنه مثلا میگه قش میشه توش مخلوق میکنه مثلا ظاهری کشیده اما توش آبروخته این کاری که میکنه قش کردن، واقرش کردن این که انجام میده با این مخصوص کردن خودش رو در حقیقت در جامعه اسلامی جدا میکنه چون یک باطنی برش قرار میده که اون سر میکنه مردم اون باطن رو نفهمن اون آبرو نفهمن چون اگر مثلا بنویسید که آ این شیری که از ما مثلا از روستا گرفتیم مثلا به اندازه 10 درصد بهش آب اضافه کردیم به اندازه چقدر ماده خوراد بنویسیم چه ایشی خوشگوار اینا همش اضافه این که قش خب نیست همه چیز اینا که قش نیست غرش عبارت از مخشوش کردن عبارت از این است که سعی بکنه یک چیزی رو قرار بده و مخفی بکنه اگر علانش بنویسید که غرش نیست. این که مخفی میکنه اینه خودش رو از مردم جدا نکنه یعنی پیغمبر مخواه بفنید در حقیقت اون قشق در خود شخصه نه در معالی قشق عصی در مجدان این شخصه من قشق هم ولو اون داره عملا میده اون شیر رو توش آب روشته اون در واقع این نشون میده که از جامعه اسلامی جدا شده از مردم جدا شده دیگه اونی که در واقعشه در واقعش اون نشت در ماهیه تینه اون بسرگات تینه, در تینه این در حقیقت اون حساس و فش و مخشوش بودن و ناپاکی و نخالصی و ناسره بودن این در حقیقت در تینه توست در ویژان توست او سعی میکنه خودش رو از مردم مخی بکنه فلیسا لیش نمید او از جامعه ما نیست از جامعه اسلامی نیست خودش رو از جامعه اسلامی جدا میکنه این شخصی که سعی کنه رشت انجام بده خودش رو به طور کلی هم جامعه یعنی انجام میکنه و نظام در هم خیلی واضح در میاد که این شخص این شخصی اصولا اون قشه اصلی در وجود اوست نه در اون آب خارجی نه در اون شیر خارجی نه در اون درهم خارجی خیلی از تعاویر بسیار زیبای رسول دست که لیس مننا این تعبیر رو در روایت احزیمت هم هست انشاءالا میخونیم فیلن متعرض روایت شیعه بشیم از وقتی مرموم شیخ توصی در کدارو تحذیب این حدیث رو از احمد ابن محمد ابن شروع کرده احتمال خردی داره که از کافی نگرفته باشه چون کافی دو سند داشت علی ابن و محمد ابن احیان. احتمال داره که از کافی باشه اما خیلی بریده مخصول چون در کتاب کافی در احمد ابن محمد تنها هست اما در کتاب که احمد ابن محمد ابن ایسا هست احتمال قوی داره که شیخ چون ما از کردیم شیخ مجموعه روایات احمد ابن محمد ابن ایسا را از پنج مسترزاره یا 6 تا پنج را یکیش کافیه یکیشم کتاب نوادر خودشه این کتاب محمد نهلی محبوبه از مسادر متعدد نهلی میکنن شاید محبومشه که مستان دقت بکنن که دقت نشون بدن که نسخه ای که من نهلی میکنم از نسخه دیگری غیر از کتاب کافی قبلن در کافی دو سنده ایشون یکی آوردن سانه در کافی احمد و محمد تنهاست ایشون در جا احمد محمد نهلی ایسا آوردن ازام به احتمال کافی من به ذهنم میاد که طریق مرحوم شیخ توسی طریق سرو می باشه پس مجموعا سه طریق به کتاب ابن عبی عمر آمد از سه را به کتاب ولذا انصافاً شواهد زیاده این حدیث شماره یکی که در اینجا بود در شماره هفت اینجا باز از کافی علی ابن ابراهیم انعبی و محمد ابن یحیی انعحمد ابن محمد جمعیعا ابن عبی عمر احتمال... چون سند یکیه کار کلی یکیه احتمال داره شاید تلخیص کرده یا تخفیف کرده نیموره این همون سنده ابن عبی عامل هشان سالم هن عبی عبدالله از اجایب اینه که همینجا هم, هم با شیخ توسی همون کاره کرده موسیقی احمد محمد نیسا هم در اونجا عوض کرد تعبیر رو هم در اینجا و سنده بهشان هشان سالمه این عبی عبدالله علیه السلام احتمالا یا در کتاب نعبی دو جا بوده یک جا کلام خود امام ساده بوده یک جا کلام رسول الله بوده احتمالاً این دقت کنه قال رسول الله لرجل نیبی اتمر یا فلان اما علمته امنهو لیس من المسلمین من غشه در اونجا کلام احتمالاً چون مس... سرد لگیدم یکیه این تحجیباوره واقعا و تأبیر شیخ هم یکیه همونجا شیخ یه تأبیر خاصی داشت همینجا این بله این هم حدیث دومی که از هشامبن مرحوم بن سالم به اصطلاح بله در اینجا در ما نحنفی نحق شده که از کردیم که جهاتش در تحضی و در کتاب کافی مثل هم. یه حدیث دیگری باید از همین کتاب ظاهرن ابن عبی امر باشه در کتاب تحذیب نقل کرده و کافی کافی این شروع داری ابن عبی کافی هستین غورته ابن عبی داره از کافی گرفته بعضی معتقدن که مثلا شیخ خود آلی ابن عبی شیخ خودش از کتاب علی ابن عبی امر باشه این خلافه داره ابن, ابن, تو ابن عبی علی ابن عبی از کتاب کافیه توضیح شه از خمی این ابن انه هشام ابن حکم اینجا بایده هشام سالم هشام حکمه برید هم هست بگیمیشون اشتباه کرده خیلی بریده ظاهرا به دیگری که ابن نبی عمر رو بوده احتمالا در کتاب ابن نبی عمر هم از رسول الله بوده هم از امام صادق بوده هم اینجا از هشام حکم بوده غیر از هشام صالح انهو قال کن تا ابی سار بری معرب کلمه شاپوریه شاپوری خدا شاپوری این بچه شاپور شاپوری این بچه شاهزازه شا لباس شاپوری لباس هایی بوده در اون زمان که خیلی رقیق و لطیق بوده مثل حریبانه و همیشه ما شده مثل ترتون زمانیم. لباس های پارچه های لطیقی بوده بیناس شاپوری میگفتن که بعد به تعریف شد چون در مساط قادر فکر تبدیل به به شد و شین شد سابوری و صابوری ران یا صابی هم دیگه میسی شد اشت نکردشون میزن. از كنت بی و صابوری دا صابوری میرین و صابوری ینی ل سیاب صابوری. پارچه های شاپوری رو میفرختم فظران سایه بود نور هم کمر و بیا حسن میشاده سلام از میمثلجهفر ردفت شدن هم چیزی ابی و فرات تو مبینه گگذارهره شایدن بغداد بوده وقتی که حضرت در بغداد بوده البته در کتاب فقیه داره را راکبه هم. در کافی و تردیب کلمه راکبر نیمونه اختلاف های دیگه هم بین فقیه و هست آیون خودشون مراجعه کنگی من نخوندم فقط این یکی شو بسته فقال یا هشان این نده افروله قشش در تاریکی این قش حساب میشه بکسر به خط شین خود فعله مثل زر و بکسر عین بکسر دفعه در بکسر عین بکسر عین و عین غش مخشوشه ان هاذا غش شده این مخشوشه اشتریت و در همم قشره پیش این مخشوش مثل ثرت و خیل خیل این مخشوش مثل زر و ذرب ذرب این مخشوش فدیناه یا هشام ان البيع في الظله كاشون اگه بخاص بکنیم و ان الغش لایه غش حلال نیست البته این روایت از روایات ماث که خیلی هم روایت قشنگیه لکن این روایت یک نکته دیگری هم داره که بعد با در فلسفه دین جامعه تردید بشید احتمالا اما با این تعریف فن الغش لایه و با این نقطه که این رو عنوان کبرا بعد از نلبه افضل قشون اووردن شاید ناظر باشن به بسلا معامله لیسل نامر بشنا نازر هست به حرمت پس دو بحث در واقع قش هست یکی حرمت قشه یکی بحث مزعیست حالا پس اون کسی خدا نکره قش انجام داد آیا معاملن باطل یا معامله باطل نیست؟ این که هم مطلع ما آمده این تعبیر این نزبه افرلغشون درد و در و این نرغشل آیه و این نرغشل آیه این مشعر است اجمالا بیدیم که اما غیر از جهت حرمت نکان متعرضه به جهت فساد هم داشن اینشالا بر یه بحث فاعده. of okay. this